بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداونده به اندازه مهربان نهایت باره این سوره است که آن را نازل کردیم و تعمیل احکام آن را بر شما فرض گردانیدیم و در آن آیات روشنی را نازل کردیم تا با شک پند بگیرید زن زناکار و مرد زناکار هر یک از ایشان را سزد را بزنید و شما را در مورد ایشان در دین خدا رعفت نگیرد اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید و باید یک دسته از مسلمانان مجازات ایشان را مشاهده کند مرد زناکار نکاح نمی کند مگر زن زناکار یا مشرک و زن زناکار نکاح نمی کند مگر مرد زناکار یا مشرک و این کار بر مؤمنان حرام شده است کسانی که زنان پاکدامن را متهم به زنا می کنند و سپس برای اثبات اتهام خیش شهار شاهد نمی آورند پس ایشان را هشتاد در بزنید و هرگز شهادت شهادتشان را قبول نکنید هم ایشان فاسق مگر آنانی که توبه کردند و خیشتن را بعد از این اصلاح کردند پس بگمان خداوند آمودگار و مهربان است و کسانی که زنان خود را متهم به زناکاری می کنند و برای اقامه آن گواهانی به جز خودشان ندارند پس گواهی یکی از ایشان چهار بار شهادت است به اینکه که به الله قسم است که او واقعا از راست است و سوگند پنجم این است که لعنت خدا وی ویباد اگر از دروغ گویان باشد و زن مجازات و را از خود به این طریق دفع می کند که چهار بار به خدا شهادت دهد که بدون شک او یعنی شوهرش از دروغگویان است و سوگند پنجم وی این باشد که غضب خدا بر وی باد اگر شوهر او از راستویان باشد و اگر فضل و رحمت خدا به شما نمی بود و اینکه خدا توبه زیو و با حکمت است شما و باکن تباه می شود و واقعا کسانی که این تهمت بزرگ را وارد کردند گروهی از شمایند آن را به خود بعد ما پندارید بلکه در آن برای شما خیر است برای هر یک از ایشان از گناهی که مرتکب شده است مجازاتیست و کسی از ایشان که بار زیاد این گناه را به دوش گرفت برای او بزرگ بزرگیست هنگامی که آن تهمت را شنیده چرا مسلمانان یعنی زن و مردشان در مورد خیش گمانی نیک نبوردند و نگفتند این تهمت دروغیست آشکار چرا ایشان بر این اتهام چهار شاهد ناوردن و چون گواهان را حاضر کردند توانستند؟ پس چنین مردم خودشان در نزد خداوند دروغوی هستند؟ و اگر فضل خداوند و رحمت او به شما در دنیا و آخرت نمی بود به شما در آنچه متکب شدید عذاب بزرگی می رسید وقتی را به خاطر آورید که این اتهام بزرگ را به زبان یاوردید و به دهن خویش چیزی می گفتید که با آن علم نداشتی و آن را آسان می پنداشتید در حالی که این امر در نزد خدا بزرگ است و چون آن سخن را شنیدید چرا نگفتید و ما شایسته نیست که در مورد این موضوع حرف بزنید پاکی تو ای خدا این بحتانی بزرگ است خداوند شما را فن می دهد که هرگز با مثل این کار باز نگردید اگر مسلمانید و خدا به شما آیات خیش را بیان می کند و خداوند دانا و با حکمت است بگمان آنانی که میخواهند صحشا در میان مسلمانان شایع گردد برای ایشان در دنیا و در آخرت عذابی در ناکیست و خداوند میداند و شما نمیدانید و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود و اینکه خدا مهربان و رحیم است و حالت سخت دامن شما میشد ای مسلمانان قدم های شیطان را خیر نکنید و هر که قدم های شیطان را پیروی کند، پس بیگمان شیطان به فخشا و کارهای ناشایسته امر می کند. و اگر فضل و مرحمت خداوند و شما نمی بود، هیچ یک از شما هرگز پاک نمی شد. ولی خدا هر که را بخواهد پاکیزه می سازد و خداوند شنوا و داناست. مردمی با فضیلت و توانگر شما نباید سوگند بخورند که از امداد با عقارد مساکین و مهاجرین راه خدا دریغ ورزند باید عفو کنند و گذشت ورزند آیا دوست ندارید که خداوند شما را بیامرزد و خداوند آمرزنده و مهربان است بگمار آنانی که زنان پاک دامنی بی خبر مؤمن را با فحشا متهمی می‌سازند در دنیا و آخرت به لعنت خدا گرفته اند و برای ایشان عصابی بزرگیست در روزی که زبان‌هایشان دستهایشان و باهایشان بر ایشان و اعمالی که متکب شدهاند شهادت میده در آن روز خداوند جزای را که مستحق آنان به تمام و کمال به ایشان میدهد و میبرند که خداوند هم اوست حق آشکار کننده زنان آلوده و فحشه شایسته مردانی آلوده می باشد و مردان آلوده و فحشه شایسته زنان آلوده هند. زنانی زنان پاکدامنر شایسته مردانی پاکدامن و مردان پاکدامن شایسته زنانی پاکدامن ایشان از آنچه مردم میگویند میگویندند ما برای ایشان آورزش و روزی خوب پاک و وافر است ای مؤمنان به خانه غیر خانه خود داخل نشدی تا اجازه بگیری و به اهل آن سلام دهی این کار خیر شماست تا باشد که پند بگیری اگر در آن کسی را پس در آن داخل نشدی تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شود که بازگردید، برگردید این کار برای شما شای است و خداوند به آنچه می کنید آگاه بر شما گناهی نیست که وارد آن منازل غیر مذکونه شوید که در آنجا مال و مطای است که از آن شما می باشد و خداوند آنچه را آشکار و آنچه را پنهان می کنید می داند برای مردان مؤمن بگو چشمهای خود را پایان اندازند و دامان خود را پاک نگه دارند این کار برایشان شایسته تر است بگمان خداوند به آن چه انجام میدهند آگاه است برای زنان امین به چشمهای خیش را پایان اندازند دامان خود را پاک نگه دارند و زینت خود را جلوان بجز آن چه و ندهند به جز آنچه از آن به طور عادی نمایان است و باید ایشان چادرهای خیش را بر گریبان خود اندازند و زینت خیش را چه ندهند مگر به شوهران خیش یا پدران خیش یا پدران شوهران خیش یا پسران خیش یا پسران شوهران خیش یا برادران خیش یا پسران برادران خیش یا پسران خواهران خیش یا زنان همکیش خیش یا بردگان خیش یا خدمتگاران مردی که تمایلات جنسی ندارن، یا اطفالی که هنوز احساس جنسی در آنها بیدار نشده است پاهای خود را در هنگامی راه رفتن توری به زمین نزنند که از زینت خیش آنچه را نگه می دارند آشکار شود و همه به سوی خدا رو آورید ای مؤمنان تا باشد که رستگاش مردان و زنان به همسر خیش را به همسر بهید و نیز غلامان و کنیزان صالح خیش را اگر نادار باشند خداوند ایشان را از فضل خیش توانگرهی سازد و خداوند گشایش گرو داناست و آنانی که قدرت معدی ازدواج را نمی آبند باید افت را نگه دارند تا خداوند ایشان را به اساس فضل خیش بینیار سازد و آن عیده از بردگان شما که آزادی خود را در برابر پرداخت پول می جویند ایشان را در برابر پول آزاد کنید اگر در ایشان خیر و صلاح را سراغ دارید و به ایشان از مالی که خدا به شما داده است چیزی بدهید کنیزان خیش را اگر خواهان حفظ فتح خیش باشند و فحشان مجبور نسازید تا بدین وسیله مطای زندگی دنیا را بدستانید و هر که ایشان را مجبور سازد پس به خداوند بعد از این جبر و اکراهشان آمر زنده و مهربان است و به شما با شما آیاهای روشن نازل کردید و نیز مثالی از زندگی پیشینیان شما و پند برای پرهیزگاران خداوند نور آسمانها و زمین است مثال نور او چون تاکیست که در آن چراغی قرار دارد و چراغ در شیشهیست آن شیشه گویی ستاره است مرواریدگون چراغ از روغن درخت مبارک زیتونی افروخته می شود که نه شرقی است نه غربی نزدیک است که روغن آن روشن شود اگر اگرچه آتشی با آن تماس نگرفته باشد نوری بر نوری دیگر خداوند به نوری خیش هر که را بخواهد هدایت می کند و خداوند برای مردم مثالهایی می زند و خداوند به هر چیز داناست چنین چراغ ها در خانه های روشن می شود که خداوند اجازه داده است که بلند کرده شوند و نام خدا در آنها ذکر شود در آنها خداوند را صبح و شام بار بار به با پاکی یاد می کند مردانی که ایشان را تجارت و داد ستد از ذکر خدا و از اضای نماز و دادن زکات غافل نمی سازد آنها از روزی می که در آن دلها و چشمها منقلب می تا خداوند ایشان را به بهترین عملی که انجام دادهاند پاداش دهد. و به ایشان از فضل خود علاوه کند و خداوند کی را بخواهد روزی به حساب میدهد کافران بگمان اعمال ایشان مانند است در دشتهای ریگزار که آن را انسانی تشنه آب می پندارد. تا به نزدیک آن بیاید آن را چیزی که فکر می کرد ننیابد و خدا را در نزد خود یابد که حساب او را فیصله می کند و خدا در حساب گفتن سریع است یا اعمالشان همچون تاریکی در بحر فهناور که آن را موج پوشانده باشد و بر بالای آن موج دیگر قرار بیدیرد و بر بالای آن ابر باشد تاریکی هایست برخی از آن بر برخی دیگر طبقه زده کسی که در این تاریکی ها گیر آمده چون دست خود را بیرون آورد ممکن نیست آن را بیبیند هر کی را خداوند نوری نداده پس برای او بهره از نور نیست آیا ندیدی که خدا را هر آنچه در آسمانها و در زمین اند تسبیح میگویند و نیز پرندگانی بالکشاده هر کدامشان نماز یعنی نحوه پرستش و ستائش خدای خود را میداند و خداوند به آنچه بیکنند آگاست پادشاهی آسمانها و زمین از آن خداست پس از همه موجودات و سوی اوخش آیا یا ندیدی که خداوند ابر را به آرامی می سپس میان آن حیوان می دهد بعد آن را متراکم می سازد پس قطره های باران را بینی که از لاغرای آن بیرون می آیند و از آسمان از کوه که در آن است جاله را فرو می ریزد پس هر کی را بخواهد به آن مساب می کند و کی را بخواهد از آن باز می دارد نزدیک از روشنی برق آن دیده ها را برو باید. خداوند شب و روز را به یکدیگر تبدیل می کند و بیگمان در آن برای صاحبان بسیرت است خداوند هر جانوری را از آب آفریده است بعض از اینها بر شکم خود می بعضی از ایشان بر دو پای خود راه می روند. بعضی از ایشان بر چار پاه را می روند خداوند هرچی را بخواهد می حتی که خداوند بر هر هرچی تواناست، بیگمان ما آیه های بخش را نازل کردیم و خداوند هرکی را بخواهد برای راز هدایت می کند منافقان می گویند با خدا و رسول او ایمان آورده ایم و فرمان برده ایم ولی بعد از این فرقه از ایشان رو می گردانند و ایشان مؤمن نیستند و چون به سوی خدا و پیامبر او خوانده می شوند تا درمیان ایشان حکم کنند آنگاه گروه از ایشان رو گردان می شوند. اما اگر حق به طرف ایشان باشد با فرمان برداری کامل به سوی او می آیند آیا در دلهایشان بیماری است یا در شک افتادند یا می که مبادا خدا و پیانبرش بر ایشان ستم کند؟ نه خیر بلکه ایشان خود ستم گاهد سخن مسلمانان چون به سوی خدا و رسول او فرا خوانده می تا در میانشان حکم کند جز این نیست که بگویند شهیدیم و اطاعت کردیم و هم ایشان ایشانند رستگاهد و هر که خدا و پیانبر او را اطاعت کند و از خدا بترسد و از او حراس نماید پس هم ایشانند پیروزمند با خدا با نهایت تأکید خود سوگند خوردند که اگر به ایشان عمر کنی بگو من از جان و مال خود در گذرند و بیرون می شود بگو سوگن نکورید فرمان بریب سنگیدهیست یعنی نیت نشان نشاندهید عک که خداوند به کنی چ کنید باغاست بگو خدا را فرمان برید و پیامبر را فرمان برید و اگر او بگردانید پس پیامبر مسئول چیزیست است که بر دوش او گذاشته شده است و شما مسئول چیزی هستید که بر دوش شما گذاشته شده است. و اگر او را فرمان برید ره می میشید. بر پیامبر نیست مگر اطلاقی آشکار خداوند آنانی از شما که ایمان و و اعمال صالح انجام داده اند و عدد از است که البته ایشان را در زمین خلیفه می سازد. طوری که آنهایی را که قبل از ایشان بودند خلیفه ساخته بود تا دین ایشان را که با ایشان خوش آی انده است فابر جا و استوار گرداند و حالت ایشان را بعد از خوف و امن مبدل سازد. ایشان تنها مرا پرستش میکنند و با من چیزی را شریک نمی و کسانی که بعد از آن کافر شدند پس هم ایشانند فاسق نماز را به تمام و کمال ادا کنی زکات را بپردازی و بر را اطاعت کنی تا باشد که مورد رحمت قرار گیری گمان مبر که کافران خداوند را در زمین آجست ساخته می توانند جای ایشان آتش است و چی بد جایی برگشت است. طریق مسلمانان باید بردگان شما و نیز فرزندان شما که هنوز بر سن بلوغ نرسیده اند از شما در سه موقع اجازه ورود بگیرند پیش از نماز صبح در نیمی روز هنگامی که لباس های خیش را از تن می‌کشید و بعد از نماز خفتند این سه وقت هنگام خلوت شماست. بعد از این اوقات بر شما و ایشان گناهی نیست که بعض شما بر بعض دیگر آمد و شد کنند. بدین این گناه خداوند به شما این آیات را بیان می کند خداوند دانا و با حکمت است. و چون اطفال شما به سن بلوغ رسیدند، ایشان نیز باید مانند کسانی که پیش از این به سن بلوه رسیده بودند اجازه بخواهند، به دیمگونه خداوند آیات خود را بیان می کند و خداوند و با حکمت است زنان نشسته یعنی کلان سالی که امید ازدواج ندارند بر ایشان گناهی نیست که قسمت از جامعهای های خیش بکشند و آرایش خود را به مردم جلوه ندهند ولی اگر لباس کامل بپوشند و از افاف بگیرند برایشان بهتر است و خداوند شنوا و داناست. نه بر نبینا هرهجیست نه بر لنگ و نه بیمار گیمار است که با شما یک جاகزاب بخورند و نه بر خود شما است که از خانه های خود یا خانهای های خیش یا خانهای های مادرانی خیش یا خانهای های برادرانی خیش یا خانهای های خیش یا خانه های خیش یا خانه های ماما های خیش یا خانه های ماما های خیش. یا خانه های که کلید، های آن در اختیار شماست یا خانه های دوستان خیش غذا بخورید همچنین به شما گناهی نیست که یک جایی نان بخورید یا به تنهایی پس چون به خانه داخل شده برخشتن سلام کنید تحییت از جانب خدا تهیت مبارک و پاکیزه بدین دین گناه خداوند آیات خود را به شما بیان می کند تا باشد که بفهمید و بیگمان کسانی مؤمن هستند که به خداوند و پیامبر او ایمان آوردند و چون در کارهای دست جمیب با پیانبر باشند تا اجازه او را حاصل نکنند نمیروند بیگمان آنانی که از تو اجازه می طلبند به خدا و با پیانبر او ایمان دارند پس چون برای اجرای پاره از امور خیش از تو اجازه بخواهند هر میشان را که خواهی اجازه بده و از خدا برای ایشان آموزش به خواه حقا که خداوند آموزده و محربان است فراخانی پیانبر را در میان خیش مانند فراخانی که شما از یکدیگر خود می کنید تلکی ننمایید بگمان خداوند آن که از میان شما در خفیا و با آهستگی می زن می پس کسانی که از حکم پیانبر تخلق می ورزند باید بترسند که مبادا با فتنه مواجی شوند یا عذاب درناک به ایشان برسند خان به خاطر داشته باشید که هر آنچه در آسمان ها و است از آن خدا می باشند گمان او حالتی را که در آن هستید و نیز روزی را که به با او بازگردانده می شوید می پس ایشان را به آنچه می کردند آگاه می سازد. و خدای وان به هر چیز